قاهره مصر 22 فوریه 1964 دیوارهای خاکستری اتاق انگار میخواست خفهم کند. وسعت اتاق نشسته بودم. مدام صرفه میکردم. با هر صرفه شدید احساس میکردم ریههایم تکان میخورد. روی صندلی آهنی راحت نبودم و دائم جابجا می شدم. پشتم را خم کردم. پاهایم را هم جمع کردم و به سینه چسباندم. خودم رو مچاله کردم. سعی می کردم اینطور بنشینم تا شاید کمتر احساس درد کنم. اما بیفایده بود. خواستم از جا بلند شوم دنبال راهی بودم تا بتوانم از این وضعیت و دردم خلاص شوم، اما توانه برخواستن و انجام هیچ کاری را نداشتم. دیدیان بیکر دکتر هانس آیزل منتظر شماست. نمیدانستم دانستم صدا از کجا می آمد. بلند شدم و به طرف در ورودی اتاق روبرو به رو به رو به در اتاق درست وسط دیوار روبه قرار داشت دری قدیمی بود و موقع باز شدن جیرجیر جیر می کرد انگار در طول زمان همه نیرویش را جمع کرده بود تا وقتی من میخواستم از آن وارد شوم مقابل من مقاومت کند دکتر پشت در منتظر ایستاده بود با چشمانی خیره به من زل زده بود از نگاهش انگار آتش میبارید داشت مرا می سوزاند. دوباره سرفهم گرفت دستم را جلوی دهانم بردم روی کف دستانم نقطه های پراکنده قرمز پخش شده بود. میبینی لیلیان؟ صرفهات خونیه. تو سل گرفتی. باید یه آمپول بهت بزنم. اینطوری از بیماری و ضعف خلاص میشی. باید همه دنیا رو از آدم های بیمار و ضعیف پاک کرد. موافقی؟ دکتر آیزل آمپول را بالا برد و به طرفم آمد. بعد از اینکه آمپول را بهت تذریخ کردم، دیگه چیزی احساس نمی کنی. آماده ای لیان. با فریاد از خواب اصرگاهیم بیدار شدم. بدنم می لرزی. عرق کرده بودم. از وقتی کاردی بوش و ملاقات کرده بودم کابوس می دیدم. من فرشته نیستم. این لقب رو دوست ندارم. حتما می دونی اونهایی که این لقب رو به من دادن نیت خوبی نداشتن. به من میگن فرشته. اما طوری در حرف می که انگار شیطان هستم. آن روز در رستوران باشگاه وقتی به او گفتم فرشته اینطور جوابم را داده بود. متاسفم من با دیدن شما یاد یک مقاله افتادم با عنوان فرشته که عکس شما را چاپ کرده بودن. کابوسی که از آن روز همیشه در خوابهایم بود و رهایم نمی کرد، در واقع یادآوری گفتگویم با کاردیبوش یا بهتر بگویم دکتر هانسکورت آیزل بود. بعد از ازخواهی هم احساس کردم کمی فضا تلطیف شد. ادامه دادم اما من شما رو میشناسم دکتر آیزل. من رو یادتون نیست؟ من لیلیان هستم. منشی جناب آیشمن وقتی به دیدن ایشون میامدین چند بار دیدمتون. به گمانم اصلا حرفهایم رو نشنید. مثل یک زبط صوت صحبت میکرد. من به خاطر یه سری های واهی محاکمه شدم. اصلا عقل آدم قبول میکنه که من، به سیصد بیمار مبتلا به سل رو کشته باشم؟ آیا این حرف معقوله که من از علم پزشکی سوء استفاده کردم و به این افراد سم تذریخ کردم؟ من اونها رو نکشتم. درمانشون میکردم. سالها زندانی شدنم کاملا ظالمانه بود. دلیلش رو بهت میگم. اونها اول حکم اعدام من رو صادر کردن. بعد هم چند بار حکم رو تغییر دادن و برام تخفیف قائل شدن. همیشه تحت تغییب بودم. تا اینکه مجبور شدم از دستشون فرار کنم و وطنم رو ترک کنم. وقتی فهمیدم دوباره به جرم همون اتهامات قبلی تصمیم دارن من رو محاکمه کنن فراری شدم. از من چی میخوان؟ اون همه سال بودنم براشون کافی نبود؟ بهت میگم اونها میخوان من بمیرم. فقط با مرگ من آروم میشن. به مرگ عادی هم راضی نمیشن. اونها مرگ خفه‌تبار من رو میخوان. من چیزی جز خوبی از دکتر آیزل ندیدم. او خیلی به من کمک میکرد و با من بسیار مهربان بود. مرد خوشقلبی بود. در طول هفته گذشته کمکم کرد تا یک آپارتمان در طبقه همکف واقع در خیابان شماره نوه المعادی در چند قدمی ایستگاه قطار پیدا کنم. آپارتمانی با یک اتاق و سالن با اساسیه متوسط که اجارهش با درآمد شغل جدید من تناسب داشت. من، به عنوان منشی دکتر کارل دیبوش در مطبه او که در واقع خانه بود مشغول به کار شده بودم. یک نکته جالب در زندگی دیبوش وجود داشت. آن همین که سرنوشت او را به سخره گرفته بود. خانه او درست روبروی یک معبد بزرگ یهودیان وسط خیابان یهودی نشین در منطقه المعادی واقع شده بود. یک روز به من گفت کار تو اینجا موقتی هست تا وقتی یک شغل مناسب برات پیدا کنیم سعی میکنم معلم یه مدرسه یه آلمانی یا یه مرکز فرهنگی بشی. ما اینجا دوستان زیادی داریم. بودنت اینجا پیش من خیلی جلب توجه میکنه. موندنت در اینجا زیاد طولانی نشه بهتره. از روی صندلی بلند شدم. سعی کردم دیگر با اون کابوس فکر نکنم. نخواستم قبل از غروب آفتاب کمی بخوابم اما این خواب وحشتناک نگذاشت. چند لحظه ایستادم تا تمرکز کنم و کارهایی که باید انجام میدادم در ذهنم مرتب کنم. وسایل سفره را برداشتم. برای دو نفر غذا آماده کردم. خودم و مهمانم. نگاهی سریع به بوغلمون روی اجاق انداختم که در حال پختن بود. همانطور که مادرم به من یاد داده بود برای پخت بوغلمون شب کریسمس دورش را با سیب زمینی و پیاز و مقدار زیادی چغندر پر کردم. بوغلمون و موادش رو روی شعله کم اجاق بذار و اجازه بده تا چند ساعت بپزه لیلیان وقتی او از من خواست یک غذای سنتی آلمانی برایش بپزم با خودم فکر کردم دستور پخت بوغلمون شب کریسمس مادرم تنها غذایی است که در آن مهارت دارم از روزی که حاتم سیفی من را برای شام دعوت کرد هر روز با او بیرون میرفتم. نمی دانم چطور مرا اسیر خود کرد فردای همان روزی که پیشنهاد داده بود رسس ساعت هشت جلوی در باشگاه منتظرش بودم فکر می کنم مهمترین ویژگی او که بیشتر از آن خوشم میامد این بود که او بسیار رک بود تا جایی که این ویژه گاهی آزاردهنده هم میشد هیچ حقوقف و کلکی نداشت و دورهو نبود اولین باری که با هم شام خوردیم با حرفش شگفت کرد وقتی داشتم از اتومبیل پیاده می شدم گفت تو ماجراجو هستی. به من هم به عنوان یک ماجراجویی جدید نگاه کن که قرار ازش لذت ببری و تموم بشه. قشنگترین بخش ماجراجویی همینه که زود تموم میشه لیلیان. برای ملاقات امروز لباس جدیدی خریدم. آنقدر ساده نبودم که بخواهم به آن مرد چشم سبز قوی هیکل دل ببندم. اما آنقدر شکننده و ضعیف بودم که میخواستم حتی برای مدت کوتاهی هم که شده او را در کنار خود داشته باشم و تحت حمایتش باشم. پیراهنی به رنگ قرمز تند انتخاب کردم و خریدم. خیاط مصری نیم ساعتی وقت گذاشت تا بتواند پیراهن را به اندازه مورد نظر من در بیاورد. به نظرم لازم بود به اندازه یک وجب یا بیشتر کوتاه شود چون میخواستم بالای زانو باشد. و ساغ پایم را نپوشاند. دستی به لباسم کشیدم. در چهره خودم دقیق شدم. از آنچه در آینه می راضی بودم. مدت بود این احساسات زنانه را در وجودم پنهان می کردم. زن درونم اکنون سر بلند کرده بود و اوضاع را تحت کنترل خود داشت. اکنون دیگر احساس قربت را کنار گذاشته بودم. خستگی فرار که از زمان سفرم تا کنون با من بود و رهایم نمیکرد، از تنم بیرون رفت. احساس سباکی می کردم. احتمالا امشب هاتم سومین شرطی که با دوستانش بسته بود را هم برنده می شد. تا وقتی که آغوش او به روی من باز بود و من می توانستم به او تکیه کنم و با صدای زربان قلبش آرام شوم، هیچ چیزی مانع آن نمی شد که سومین شرط را هم ببرد. زنگ خانه به صدا درآمد بالاخره بلاخره آمده بود. قبل از اینکه در را باز کنم، با نگاهی سریع اطراف را بررسی کردم تا مطمئن شوم همه چیز آنطور که می‌خواهم سر جایش قرار دارد. حاتم با یک شاخه گل سرخ سورپرایزم کرد. بوسه کوچکی بر هم زد، گل را به دستم داد و وارد آپارتمان شد. نصف بوغالمون و دو بطری شراب مصری که او با خودش آورده بود خوردیم. صحبتمان در طول شام قطع نمیشد. هنوز هم مثل روز اول که با هم آشنا شدیم، سعی میکرد به فهمت چه چیزی باعث شده من به این کشور بیایم. ببینم تو از آلمان شدی اومدی قاهره که منشی دیبوش بشی و برای اون کار کنی. باورم نمیشه. تو رو خدا بگو چرا اومدی مصر. من اطلاعات بهت بگم نصف مصری ها که در کشور تو زندگی کنن. راه رو برعکس اومدی عزیزم. خندیدم و سعی کردم بس رو عوض کنم. فقط برای این اومدم که هاتم سیوفی شهرس هاش رو ببره. نه، نه، فقط همون دو شرطی که با دوستاش بسته بود برنده بشه. میخندید و با لحن شوخی سو، سوالات بیشتری از من می‌پرسید. <تصفح> بگو ببینم، از دادگاه های آلمان فرار کردی؟ دربانت با کسی حرف نمیزنم، اما اگه تو یه مجرم جانی هستی، باید بشنسمه تا بتونم از خودم دفاع کنم. صورتش با یک های بلند درخشید و من را مجذوب چشمان سبزش کرد. از جا بلند شدم و دستم را به طرفش دراز کردم. دستانم را گرفت. بغلم کن هاتم. نمیدانم این جمله را با صدای بلند به او گفتم یا خودش به ندای درونی من جواب داد. محکم در آغوشم گرفت. چشمانم را بستم. در ذهنم به پرواز در آمده بودم. و از همه سختی‌هایی که بر من گذشته بود رها شدم. در میان بازوانش آرام گرفتم به آرامش و امنیت آغوش گرم او نیاز داشتم حاضر بودم هرچه از من میخواست به او بدهم حتی اگر این آرامش موقتی باشد بغلم کنهاتم. هاتم میخوام شرط امروز رو من برنده بشم